دوستان بعضی باور نمی که دنیا داره غرق می شه و به پایان می رسه. بعضی فکر می کشتی بزرگ تایتانیک فنانا پذیره. دنیا مانند کشتی در حال قرق شدنه. سالینه حالا که هنوز اون شناوره کلیسا باید چه رفتاری بکنه؟ این منظور نهفته در پشت نامی پولوس به تسالونیکیانه. به دانش کردی کجای کتاب مقدس خوش اومدیم. امروز ما متداول ترین موضوعات و یکی از بحث انگیز ترین موضوعات کتاب مقدس رو مطالعه خواهیم کرد. این شما به این درس امروز معلم ما. با هم گوش میکنیم زمان بازگشته او. در این جلسه ما بررسی نامه اول پولس به تسالونیکیان رو تمام میکنیم. در درس گذشته ما شرح زمانی وقوع یک سری از وقایی که به آمدن سانویه ی مسیح مربوط بود بررسی کردیم. پولس در باب پنجم از این نامه به شرح زمانی وقوع این حوادث این طور می پردازه. اما ای برادران در خصوص وقتها و زمانها احتیاج ندارید که به شما بنویسم. زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دوز در شب می آید. زیرا هنگامی که می سلامتی و امانه است، آنگاه حلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت چون درد زه زن حامله را و هرگز رستگار نخواهند شد. در این متن، در اول تسالونیکیان باب پنج، چنین به نظر میرسه که پولس به ما میگه در مورد زمان وقوع این حوادث و بازگشت ایسای مسیح موقعیت ای اتخاذ کنیم. موضوع اصلی دونامه پولس به تسالونیکیان بازگشت سانویه ایسای مسیح است. اما ضمن این که او در این نامه ها به آمدن سانویه مسیح تاکید میکنه در این حال از تاریخ آمدن او اطمینان نداره. پولس به این جهت نامه دوم رو نوشت چون که تسالونیکی ها برخی از تعالیم او رو که در نامه اول برای اونها نوشته بود درست متوجه نشده بودند. و چون نامه های دروغین زیادی هم وجود داشتند، چون این به نظر می رسید که نامه هایی هم که پولوس نوشته بود، اونها رو سردرگم کرده بود همینطور کسانی در تسالونیکی بودند که ادعا می کردند که مکاشفه و نبوتی دریافت کردن که بر طبق آن آمدن سانویه مسیح اتفاق افتاده و به پایان رسیده بود به این دلیل بود که پولس در نامه دومش به تسالونیکیان در مورد آمدن سانویه خداوند به شدت پافشاری می و به این واقعیت اشاره می کنه که آنگونه که آنها فکر بازگشت خداوند به این زودی نخواهد بود همونطور که قبلا اشاره کردم خداوند در مباحثه کوه زیتون به ما اینطور گفته اما از آن روز و ساعت هیچکس خبر ندارد. نه فرشتگان آسمان و نه پسر فقط پدر از آن آگاه هست ایسا گفت که حتی پسر خدا هم از اون خبر نداره این یکی از جاهایی هست که ایسای مسیح خدای مجسم صفت عالم مطلق بودنش رو رها می کنه و به عنوان خدای مجسم ایسا عالم مطلق چنین به نظر می که در این موقعیت این خصوصیتش رو رها کرده چون که گفته حتی او هم از تاریخ دقیق بازگشت خود خبر ندارد. در باب اول اعمال عیسی گفته از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید لکن چون روح القدس بر شما می آید وقت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. ایسا به شاگردانش گفت که وظیفه بزرگی به آنها محول شده و حالا اونها باید به اون بپردازند چون که زمانها و فصلها مخصوصا در مورد بازگشته او تا ابد به خود خدای پدر تعلق داره. اما پولس در اول تسالونیکیان پنج ادامه میده و اینطور میگه. لاکن شما ای برادران در ظلمت نیستید تا اون روز چون دزد بر شما آید. زیرا جمعی شما پسران نور و پسران روز هستید. از شب و ظلمت نیستیم. بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم بلکه بیدار و حشیار باشیم. این هم در راستای تعالیم عیسی در مباحثه کوه زیتون بود. در متا 24 عیسی گفته ما نمیدونیم این چه زمانی به وقوع خواهد پیوست، اما گفته نشانه هایی از زمان ها هست و او لیستی از اون نشانه ها رو در اون باب ارائه کرده. پولس در اول تسالونیکیان پنج اونجا که به تسالونیکیان میگه شما فرزندان نور هستید بر همون چیزها تاکید میکنه. منظور او اینه که ما میتونیم بصیرت داشته باشیم و مثل آنانی که نور ندارن نیستیم که قافل گیر شویم. پولس در اول و دوم تسالونیکیان درباره آمدن ثانویه مسیح با الهام روح صحبت میکنه و ما باید اون رو بخش مهمی از نگرش خودمون و دیدگاهمون از زندگی قرار بدیم.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 درباره بازگشت ثانییه عیسی مسیح در زندگی و خدمت شخصی خودش بود وقتی که تمامی آیات مربوط به بازگشت عیسی مسیح رو میخونید اعتقاد شما در مورد زمین و جهان چیه آیا باور دارید که زمین و کائنات خلق شده که تا ابد دوام داشته باشه و زمین هرگز نمیتونه از بین بره آیا تیم مثل این اظهارات عیسی را ملاحظه کنید او در متی باب 5 میگه زمین و آسمان زایل خواهند شد و در دوم پتروس باب سوم ملاحظه می کنید که پتروس از روز عظیم وحشتناک خداوند صحبت میکنه بنا به گفته پتروس تمامی آسمان زایل خواهد شد و در آتش خواهد سوخت و زمین با آتش سوزانی زوب خواهد شد. آیا باور دارید که زمین تا به عبد همینطور خواهد ماند؟ همونطور که در جلسه قبل گفتم تمامی این وقایی که در کتاب مقدس آمده اتفاق خواهد افتاد. قرار دادن این وقایه کنار هم برای تعیین تاریخ وقوع آن چیزیه که من فکر می کنم ما باید خیلی خیلی در این مورد فروتن باشیم به وقایه ایمانند ربایش کلیسا بر روی هم بازگشت سانویه عیسی مسیح می گوین ربایش کلیسا واقعی هست که پولس در اول تسالونیکیان باب چهار آیات سیزده تا هجده اون رو شرط داده اما وقایه دیگری هم وجود دارن مثل پادشاهی هزار ساله. بعضی ها اون پادشاهی را عملی به حساب میارند و برخی ها اون رو تمثیلی میدونند. اگر بگید که اون پادشاهی روحانی و تمثیلی هست، به شما می میگویند. اگر بر این باور باشید که عیسی مسیح قبل از استقرار اون پادشاهی هزار ساله باز خواهد گشت، به شما معتقد به پیش از هزاره می‌گویند. اگر شما بر این باور باشید که اوضاع بهتر و بهتر خواهد شد و اونقدر همه چیز خوب خواهد شد که پادشاهی خدا بر روی زمین مستقر خواهد شد و بعد از اون عیسی مسیح باز خواهد گشت اون وقت به شما معتقد به بعد از هزاره میگن بخش کاربردی نامه پولس به تسالونیکیان بسیار عملی هست. این مخصوصا در پایان باب 5 صدق میکنه اونجایی که او یک سری فرمان به ما میده فرمان که در پرتو این واقعیت داده شده که عیسی مسیح روزی باز خواهد گشت اینجا نمونه هایی از این فرمان رو میبینید او میگه پس همدیگر را تسلی دهید و یکدیگر را بنا کنید چنان که هم میکنید آنانی را که در میان شما زحمت میکشند و پیشوایان شما در خداوند بوده شما را نصیحت میکنند و ایشان را در نهایت محبت به سبب عملشان محترم دارید و با یکدیگر صلح کنید لکن ای برادران از شما استدعا داریم که سرکشان را تنبیه نمایید و کوتاه دلان را دلداری دهید و ظعفا را حمایت کنید و با جمعی مردم مدارا کنید حالا یادتون باشه که پولس فقط سه هفته در تسالونیکی بوده و این کلیسا کارکنانی هم داشته پولس در ادامه میگه زنهار کسی با کسی به سزای بدی بدی نکند بلکه دائما با یکدیگر و با جمعی مردم در پی نیکویی بکوشید پیوسته شادمان باشید حتی در صبح روز دوشنبه در سرمایه سهرگاهی بله پولس میگه در هر شرایط شادمان باشید و او همینطور میگه همیشه دعا کنید عجب فرمان حیرت انگیزی باز هم اینجا اهمیت دعا رو در زندگی و خدمت پولس رسول میبینید. من معتقدم که پولس رسول بیوقفه دعا میکرده شاید بر این ایراد بگیرید و بگید چطور ممکنه کسی دعا من دعا کنه من باید سر کار برم و از نظر کارفرمای من اصلا عادلانه نیست که من تمام روز پشت میزم بنشینم و دعا کنم شما چطور میتونید بی‌وقوف دعا کنید؟ من معتقدم که این به این معنیه که ما باید عادت به دعا داشته باشیم یا بیوقفه در هر حالی به خداوند متکی باشیم. در تمامی اوقات. بیلی گراهام برای هزار نفر از دانشجویان شبانی صحبت می‌کرد. اونها از او درباره ی موفقیت خارق‌العاده‌اش در جلسه‌ای که اخیراً به پایان رسونده بود سوال کردند. در بین سوالات یک نفر از او پرسید: چه مدت برای دعا اختصاص دادی؟ من جواب او رو به خاطر دارم او گفت رو راست بهتون بگم من وقت زیادی نداشتم که صرف دعا بکنم چون که درخواست‌های زیادی برای مصاحبه از من شده بود اما سعی کردم که بی دعا کنم یک نفر دیگه پرسید منظورتون چیه که بی دعا کردی او پاسخ داد خب اگر یک خبرنگار باهوش سوالی سنگین از من میکرد در حالی که او سوالش رو مطرح میکرد من در قلبم دعا میکردم که خدا به من حکمت بده تا به او جواب بدم. هر هدایتی که میشدم جواب میدادم، تمامی روز و هر روز و البته در حالی که در اون جلسه بزرگ می کردم مرتباً در دلم دعا میکردم. من فکر می کنم وقتی پولوس به ما میگه همیشه دعا کنید منظورش دقیقاً همین چیزه دعای بیوقفه باید تبدیل به رفتار قلبی ما و دغدغه ذهنی ما بشه داستانی در مورد شهر کوچکی شنیدم که در اون شهر فقط چند نفر واعظ وجود داشت وازی بود که پیرمرد بسیار خداشناسی بود و چنین به نظر می رسید که مصه خاصی از روح القدس برای خدمت داره. خادمین دیگه به او حسادت می‌کردند. اونها نمی‌تونستان کلید موفقیت و خدمت پویا او رو در این شهر درک کنند. بالاخره اونها تصمیم گرفتن که او رو تحت نظر بگیرند و سعی داشتن کلید موفقیت او رو پیدا کنند. یک شب یکی از اونها گفت: احتمالا او تمام طول شب رو دعا میکنه باید رمز او این باشه. خب تصمیم گرفتن که یکی از واعظین پشت تختخواب خواب واعظ پیر پنهان بشه او می‌خواست منتظر بشه تا وقتی واعظ وارد شد ببینه که او چه مدت دعا میکنه. واعظ پیر حدود نیم شب آمد بعد از یک خستگی 18 ساعته روزانه روی تختخواب خواب ولو شد و گفت خداوند شب به خیر و در طی 30 ثانیه خوابش برد نکته داستان این بود که واعظ پیر مجبور نبود دو ساعت دعا کنه تا به زندگی دعاییش دست پیدا کنه او در تمام طول روز رابطه ای دعایی با خدا داشت بنابراین وقتی که به پایان اون روز طولانی میرسید تنها چیزی که لازم بود بگه همین بود که بگه خداوندا شب بخیر و بعد به خواب بره رفتار دعایی که واعظ پیر در تمام طول روز پیش گرفته بود نشون میداد که معنی بیوقف دعا کردن چی هست حالا بیاید فرمان دیگر رو بررسی کنیم همیشه شکرگزار باشی آیا این چالش برانگیز نیست آیا واقعا میتونید در تمام اوقات گذار باشید؟ بله میتونید مخصوصا اگر حکمت داشته باشید. در نسخه بزرگ پولوس برای آرامش ما یاد گرفتیم که گذاری بخشی از اون نسخه آرامش هست. وقتی شما گذار هستید به طور ناخودآگاه از نگرش منفی به مثبت تغییر مکان میدید. وقتی که شما چیزی رو از دست میدید این مهمه که بر چیزهایی که هنوز دارید متمرکز بشید و بابت اونها شکرگزار باشید. به جای اینکه بر چیزی که از دست دادید متمرکز بشید و دچار افسردگی بشید شق گذاری کنید شق گذاری کردن یک روش درمانی هست به این دلیل پولس به تسالونیکیان و فیلیپیان میگه همیشه شق گذار باشید در بعضی از ترجمه ها میگه در هر چیزی شغل گذاری کنید تفاوت مهم اینجا اینه که به ما فرمان داده نشده که برای هر چیزی شق گذار باشیم بلکه ما میتونیم در تمامی برکاتی که هنوز داریم شق باشیم فرمان های دیگر اینها هستند. هستن نبوت ها را خار نشمارید بلکه همه چیز را بیازمایید و از هر چیز بد دوری کنید من به این فرمان ها فرمان باران های شدید اول تسالونیکیان باب پنج میگم چون که این فرمان ها مانند رگبار تند باران به ما داده شدن این گروه فرمان ها رو در پرتو بازگشت ثانویه ایسای مسیح ملاحظه کنید پولس در انتهای نامه اولش به تسالونیکیان دعای خیرش رو برای تسالونیکیان نثار میکنه و میگه اما خود خدای سلامتی شما را بلکل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما تماماً بیعیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح امین از دعوت کننده شما که این را هم خواهد کرد این دعای بسیار زیبایی هست براساس اون دعا در آیات 23 و 24 بسیاری از مردم اعتقاد الهیاتی دارند که به اون سگانگی میگن. به لحاظ الهیاتی برخی چیزها دوگانه و سگانه هستند. وجود انسان رو ملاحظه کنید. بعضی از مردم میگن انسان از دو بخش ساخته شده. بخشی وجود فیزیکی و بخشی وجود روحانی هست که قبلا گفتیم انسان درونی و انسان بیرونی. اما دیگران میگویند نه، انسان از سه بخش تشکیل شده. انسان یک بدن داره، یک جان داره و یک روح. براساس اساس آیاتی مثل اینها بسیاری از مردم به سگانگی معتقدند یعنی معتقدند که انسان از سه بخش جسم، جان و روح تشکیل شده دوگان باوران معتقدند که انسان از دو بخش تشکیل شده نظر شما چیه سوال مورد علاقه من از سگانه‌باوران این هست. اگر انسان از بدن، جان و روح تشکیل شده ماهیت جان او چیه جان چیزی جسمانی نیست اینطور نیست جان قابل رویت نیست قابل لمس نیست جان نامرئی، ناملموس، اما اساساً روحانی هست. من معتقدم که شما بخش روحانی انسان رو میتونید به چندین بخش تقسیم کنید. بخش روحانی انسان عبارتند از احساسات، تفکرات، اراده و ویژگی های دیگر. بر این اساس تمامی انسان ها سفات نامرئی، ناملموس و روحانی دارند. پس من معتقدم که انسان از دو بخش تشکیل شده. او از انسان بیرونی، یعنی همان بدن، انسان درونی که همان بخش روحانی او هست تشکیل یافته. بعضی از سگان باوران معتقدند که جان اشاره به قسمت زیبایی شناختی انسان داره که از اون قابلیت لذت بردن از موسیقی و یا یک نقاشی زیبا و یک غروب دلانگیز رو به دست میاره. اونها جان انسان رو کاملا مجزا از بخش روحانی انسان میدانند. به علاوه بخش روحانی وجودمون ما تشویق شدیم که روح قدوس خدا را هم دریافت کنیم و با روح خدا یکی بشی روح باید تمام وجود ما رو چه دو بخش باشه یا سه بخش و یا بخش های بیشتر تحت کنترل داشته باشه در واقع این ما رو تبدیل به انسانی روحانی می‌کنه و چیزی که پولس در اول قرنتیان به عنوان انسان روحانی ذکر کرده در واقع اشاره به همین هست. من شما رو تشویق می‌کنم که به این باران سنگین کوچک فرمان ها بیایید و ارادتون رو با اراده خدا یکی بکنید که خداوند ما در باب هفته یوحنا آیه 17 برای ما معین کرده در اون آیه عیسی به ما میگه که هر کسی که بخواد اراده خدا رو انجام بده خواهد فهمید که تعالیم من از جانب خدا هست نه از جانب انسان کلید مرکز پویای ایمان الهیات نیست بلکه اطاعت فروتنانه از فرمانهایی هست که در کلام الهامی خدا وجود داره مانند این هایی که در باب پنجم اول تسالونیکیان میبینیم. دو چیز بسیار مهم هست که باید یاد بگیریم و در زندگی خودمون به کار ببندیم. اول اینکه خداوندیسای مسیح باز خواهد گشت. دوم ما باید در حالی که مشتاقانه منتظر بازگشته او هستیم، به کار او مشغول باشیم. آیا آماده هستید که از اراده خدا در زندگی هاتون تواحد کنی؟ همونطور که قبلا اشاره کردم تعالیم خاصی در اول تسالونیکیان و همینطور تعالیم حضوری پولس در تسالونیکی وجود داشت که شاگردان او اون رو نفهمیده بودن. و بعد کسانی در تسالونیکی وجود داشتند که ادعا می کردن نبوت و مکاشفهی دریافت کردن که میگوید روز خداوند قبلا آمده و اون چیزی که پولوس ازش صحبت میکنه قبلا اتفاق افتاده. همینطور نامه های جلی بود که مرتباً به دست تسالونیکیان می رسید و ادعا می شد که از جانب پولس نوشته شده ما میخونیم خونیم که اونها متزلزل شده بودن متعادل و سردرگم شده بودند بنابراین پولوس بلافاصله نامه دومش رو برای تسالونیکیان می نویسه باب یک و سه نامه دوم تسالونیکیان بسیار شبیه نامه اول هست به این دلیل وارد اون دو باب نخواهیم شد میتونید اونها رو به دقت بخونید اما باب کلیدی در نامه دوم او به تسالونیکیان باب دوم هست. در باب دوی نامه دوم پولس چیزهایی رو درباره بازگشت ثانییه عیسی مسیح به اتسالونیکیان در میون میذاره که به جرئت میتونم بگم 90 درصد از ما هرگز اونها رو نشنیدی. اگرچه پولس بسیار عمیق وارد این تعالیم درباره وقایع مربوط به بازگشت ثانییه عیسی میشه، درست در وسط عمیقترین قسمت او میگه: آیا یاد نمیکنید که هنگامی که هنوز نزد شما می بودم این را به شما می گفتم عجیب اینه که ملاحظه می کنید او کمتر از یک ماه با اونها بوده در دوم تسالونیکیان پولس به بخشی از سوالات اونها پاسخ میده و به سردرگمی این کلیسای جوان اشاره میکنه به باب دو گوش کنید اما ای برادران از شما استدعاء میکنیم درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او شما از هوش خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید نه از روح و نه از کلام و نه از رساله‌ای که گوی و از ما باشد بدین مضمون که روز مسیح رسیده است اگر بازگشت ثانویه عیسی مسیح را مطالعه کنید ممکن از این واقعیت آگاه بشید که پولس اینجا بین دو تا از این وقایه تحت عنوان بازگشت ثانویه مسیح فرق می‌نسا پولوس پولس میگه اما ای برادران از شما استدعا می‌کنین درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما بنزده او که شما از هوش خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید. پس پولس بین واقعه ربوده شدن کلیسا که در باب چهار نامه اول از اون صحبت کرده و واقعه روز خداوند که بسیاری از انبیا از اون صحبت کردند فرق میذاره اون دست شما که عهد قدیم رو به همراه ما بررسی کردید یادتون هست که یوئیل، سفنیا و زکریا آمدن روز خداوند رو پیشگویی کردند. از روز عظیم و وحشتناک خداوند که روز داوری خدا بر زمین هست صحبت کردند کسانی که به اونها طرفدار نظریه نابودی میگن معتقدند که در نتیجه این روز عظیم و وحشتناک خداوند تمامی مواد و موجودات روی زمین نابود خواهند شد بعد از اینکه همه چیز از بین رفت خداوند آسمان و زمینی تازه خلق خواهد کرد که در آن پارسایی خواهد بود بسیاری از مردم معتقدند که نویسنده مزمور چهلوشش حجه نبی و علاوه بر انبیایی که اشاره کردم پتروس و خود خداوند همه یک صدا با هم از روز عظیم و وحشتناک خداوند صحبت می کنند که در نتیجه آن تمامی کائنات و زمین از بین خواهد رفت وقتی پولس در مورد روبوده شدن کلیسا با اتسالونیکیان صحبت می کرد، آشکارا به چیزی متفاوت از روز عظیم و وحشتناک خداوند شاره می کرد. بنابراین وقتی نامه دومش را برای اونها می نویسه، با به می گه که باید تفاوت بین این دو واقعه را تشخیص بدید این دو واقعه با هم یکی نیستند. بسیاری از محققین معتقدند که ربایش کلیسا پیش از روز خداوند خواهد بود. کسانی که به پیش از هزاره معتقدند، ترتیب وقوع زمانی این وقایه رو اینگونه قرار میدن اولین چیزی که اتفاق خواهد افتاد، ربایش کلیسا هست بعد ای در آسمان اتفاق خواهد افتاد، در حالی که رنج و مهنت عظیمی به مدت هفت سال بر روی زمین ادامه خواهد داشت و در پایان اون مهنت عظیم مسیح بر روی زمین خواهد آمد و پادشاهی خود را برقرار خواهد کرد و به مدت هزار سال در روی زمین حکومت خواهد کرد در ابتدای پادشاهی هزار ساله شیطان اسیر خواهد شد و در پایان حکومت هزار ساله شیطان آزاد خواهد شد و بعد از اون کفر و ارتداد شایع خواهد شد یعنی شیطان افراد خود را هدایت خواهد کرد بعد از اون داوری بزرگ خواهد آمد که به اون روز عظیم و خداوند وحشتناک خداون می روز خداوند هر چیزی را از روی زمین و جهان محو خواهد کرد بعد خدا آسمان و زمین جدیدی خلق خواهد کرد که در آنجا پارسایی حاکم خواهد بود و بعد از آن دوره ابدی شروع خواهد شد برخی از مردم بازگشت ثانویه عیسی را به لحاظ ترتیب وقوع زمانی اینگونه باور دارند حالا میبینید که چرا تسالونیکیان سردرگم شده بودند پولس فقط سه هفته در شهر آنها بود و سعی داشت که تمامی این وقایع رو به اونها تعلیم بده پولس بین ربایش کلیسا و روز خداوند تفاوت قائل میشه و به اونها میگه آیا این مردم به شما میگن که روز خداوند واقع شده و تمام شده خب این امکان نداره روز خداوند نمیتونسته قبلا اتفاق افتاده باشه چون که در این صورت شما اینجا نبودید. هیچ کس اینجا نبود بعد پولس احتمالاً چیزهایی در رابطه با وقایعی که پیش از روز خداوند باید اتفاق بیفته به اونها گفته بود پولس می نویسه زنهار به هیچ وجه کسی شما را نفریبد زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند حلاکت ظاهر نگردد آن روز نخواهد آمد آیا یاد نمی کنید که هنگامی که هنوز نزد شما می بودم این را به شما می گفتم پولس احتمالاً وقتی که در اون شهر بوده چیزهایی در مورد بازگشت ثانویه خداوند به اونها تعلیم داده بود زیرا که آن سر بدینی الان عمل میکند فقط تا وقتی که آن که تا به حال مانع است از میان برداشته شود آنگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به نفس دهان خود هلاك خواهد کرد و به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت این همان قلب و جوهر حقیقت عمیقی هست که پولس درباره وقایعی که باید پیش از آمدن روز خداوند اتفاق بیفته با تسالونیکیان در میون میذاره. پولس به اونها تعلیم داده که روز خداوند ممکن نیست برسه تا زمانی که این بیقانونی قانونی که امروزه هم در کار هست شایع بشه و بعد با قدرت مسیح از اون جلوگیری بشه و سلطنت او بر روی زمین دایر بشه. چیزی که پولس به می میگفت یک چنین چیزی بود. در کتاب پیدایش درست قبل از طوفان خدا به زمین نگاه کرد و گفت: روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد، زیرا که او نیز بشر است. نظریه این هست، ما به بیقانونی تمایل داریم، گناه در این جهان وجود داره، اما روح القدس با قدرت مسیح با اون مقابله میکنه. مخصوصا مسیحی که کلیسا تجلی او در این جهان هست، کلیسای مسیح نمک این جهان هست، وقتی مسیح این استعاره رو در سر کوه به بکار برد، احتمالا به این واقعیت اشاره می کرد که چون اون موقع یخجالی نبود، نمک به عنوان محافظ گوشت استفاده میشد. چون یخجالی وجود نداشت شما اگر میخواستید یک تکه گوشت رو نگهداری کنید باید اون رو نمک میزدید و نمک گوشت را از فساد حفظ میکرد. وقتی عیسی این تمثیل رو به کار برد او داشت می که شاگردانش در این جهان تأثیری دارند که میتونه دنیا را از تمایل به گناه و فساد اخلاقی حفظ کنه روش دیگری برای گفتن همون چیز این هست روح من در انسان داوری می‌کند انسان جسم است انسان طبیعتی گناه گناهآلود دارد انسان به بیقانونی تمایل دارد اما من از اون جلوگیری میکنم روح من بر جسم انسان داوری میکنه طبیعت انسان از خدا مساعدت میگیره و مانع گناه جسم میشه این دقیقا همون چیزی بود که خدا در پیدایش باب شش میگفت وقتی که گفت روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد شما همون تعلیم رو در دوم تسالونیکیان باب دو می میبینید سری برای این بیقانونی وجود داره. چه کسی در مرکز این بیقانونی قرار داره؟ بر اساس این باب شیطان پشت همه این بیقانونی ها قرار داره. شیطان همیشه در قلب همه بیقانونی ها قرار داشته. او همیشه در کار بوده. اما با قدرت روح القدس از کار او جلوگیری شده. در دوم تسالونیکیان باب دو پولس به ما تعلیم میده که روزی این تأثیر بازدارنده که مانع قدرت بیقانونی میشه از بین خواهد رفت و بعد از آن قدرت بیقانونی بر تمام زمین حکومت خواهد کرد. بسیاری از مردم معتقدند که این تعریفی از ربایش کلیسا هست. اگر تأثیر بازدارنده خدا بر جهان از طریق کلیسا هست و کلیسا ربوده شده و از جهان خارج شده، تأثیر اون بر روی زمین چه خواهد بود؟ دیگر هیچ نیروی بازدارنده ای نخواهد بود. به این دلیل هست که شما روزی روی زمین مهنت عظیم رو خواهید دید رنج عظیمی که دنیا تا کنون به خود ندیده. اگر اون روزها با مداخله الهی کوتاه نمیشد، هیچ موجود زندهای روی زمین باقی نمیماند. من اغلب به این فکر می کنم. تصور کنید که رئیس جمهور کشوری اعلام کنه هفته آینده هفته آزادی ملی هست. فرض کنید او فرمانی صادر کنه که به مدت یک هفته هر کسی آزاد هست، هر طور که دلش میخواد زندگی کنه. هر کسی می مطابق میل خودش زندگی کنه و هر کاری میخواد بکنه. هیچ نیروی پلیس و هیچ نیروی بازدارندهی نخواهد بود و هر کسی آزاد هست هر کاری دلش میخواد بکنه. به نظر شما اون یک هفته چطور میشه؟ بر اساس تسالونیکیان باب دو روزی چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد. نیروی عظیمی در اون انسان هست که از بد و آفرینش برای کنترل آزادی عمل در تلاش هست. اون نیرو مانع هرج و مرج و بی قانونی میشه روزی اون نیرو برداشته خواهد شد و هر کسی از نفس خود پیروی خواهد کرد وقتی این اتفاق بیفته اون روز چگونه روزی خواهد بود اون روز روز مهنت عظیم خواهد بود زمان وحشتناکی خواهد بود کسی بر روی زمین حکومت خواهد کرد که کتاب مقدس به او ضد مسیح میگه کتاب مکاشفه هم در این مورد با ما صحبت میکنه تمامی دنیا با هم ذوب خواهد شد و همه چیز در هم خواهد آمیخت. همه چیز با هم یکی خواهد شد. یک حکومت بزرگ جهانی خواهد بود، یک اقتصاد بزرگ جهانی و خلأ رهبری خواهد بود. ضد مسیح ظاهر خواهد شد و توسط ضد مسیح رنج عظیم و پایان جهان خواهد آمد که قطعاً وحشت غیر قابل وصفی خواهد بود. کلمه ضد در یونانی دو معنی داره. اولیش جای چیزی رو گرفتن و دومی به معنی مخالفت با چیزی هست. به این دلیل میگوییم گوییم که ضد مسیح به صورت مسیحی دروغین ظاهر خواهد شد. او جای مسیح حقیقی را خواهد گرفت و همینطور بر ضد تمامی کسانی خواهد بود که مسیح دوستشان دارد. این چیزیه که پولس در تسالونیکیان آن با به دو می یادتونه که پولس به سردرگمی کلیسای تسالونیکی اشاره میکنه و سعی میکنه تا عالیم خودش رو روشنتر کنه. پولس به این نوع ایمانان تحت جفا میگه شما باید تفاوت بین ربایش کلیسا که برای شما آرامش به همراه خواهد داشت و روز بزرگ خداوند را که برای شما نیست بدونید. روز عظیم و وحشتناک خداوند باید دغدغه غیر ایمانداران باشد چون که اون روز روز بیمانند داوری بر غیر ایمانداران این جهان خواهد بود. کسانی که معتقد به پیش از هزار هستند بر این باورند که کلیسای عیسی مسیح این رنج عظیم را تحمل نخواهد کرد اما برخی از پیروان مسیح بر این باور هستند که کلیسای مسیح این رنج را تجربه خواهند کرد. در آیات 9 و ده اول تسالونیکیان باب 5 پولس مینویسه: زیرا خدا ما را برای آن بر نگزید که به غضب او گرفتار شویم، بلکه ما را برگزید تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم. مسیح برای ما مرد تا ما با او زندگی کنیم، خواه در زمان آمدنش مرده باشیم، خواه زنده بر اساس اون دعای بسیاری از مردم بر این باورند که خدا اجازه نخواهد داد قذب او بر قوم خودش ریخته بشه او قوم خودش رو خواهد رو بود و بعد از آن غضبش رو بر غیر دارانی که در جهان باقی ماندن خواهد ریخت یادتون باشه که هرگاه عهد جدید از بازگشت عیسی صحبت میکنه کاربردهای عملی هم به همراه داره نامه های پولس به تسالونیکیان پر از کاربردهای عملی هست.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 می دانیم که وقتی مسیح ظهور کند ما مثل او خواهیم بود زیرا او را آنچنان که هست خواهیم دید هر که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد همانطور که مسیح پاک هست بنابراین ای برادران عزیز پا جاب استوار بمانید همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید زیرا میدانید که زحمات شما در خدمت او بینتیجه نخواهد بود پس شما باید یکدیگر را با این کلمات تشویق کنید آیا با این کلام آرامش یافته اید اگر شما عیسی را به عنوان پادشاه آینده ای که خواهد آمد و حکومت خواهد کرد میشناسید پس این سخنان برای شما مایه تسلی است اما دوست عزیز اگر برای آمدن او آماده نیستید آماده باشید عزیزان در حالی که به پایان مطالعه تسالونیکیان می رسیم فکر می کنیم مهمه که چیزی رو که معلممون در سراسر جلسه گفت تصریح کنیم. بازگشت قریب الوقوع ایسا نباید ما رو از کار کردن دل سرد کنه. به عکس باید ما رو تشویق کنه تا سختتر کار کنیم تا بتونیم حد امکان افراد بیشتری رو با خودمون به آسمون ببریم. این برای شما فرصتی بود که در درس امروز با ما همراه بودید تا از این حقیقت تشویق بشید. که برای خدمت ما دعا می کنید و ما نیز دعا می کنیم که این درس ها باعث تشویقه شما بشن و شما رو در ایمانتون بنا کنن. تا برنامه مجدد یا زمانی که در ابرها همدیگر رو ملاقات خواهیم کرد شادی خداوندمون امید و قوت با شما باشه.